بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه پیش صحبت های راجع به کلیات درس خارج هدف و اهمیتش ویژگی های درس خارج آسیب شناسیش و بایسته های درس خارج گفته شد در جلسه امروز ما یه مقتدار <تصفيق> استاغیتر صحبت و گفتگو خواهیم کرد اگر امکانش باشه من بعضی از نرم افزانها رو دویه سطح می و با هم تمریناتی رو خواهیم داشتیم در اواخر جلسه گذشته عرض شد که پیش مطالعه خیلی مهمه مطالعه مهمه حدود در کلاس و نهوی شیلگیری کلاس خیلی مهمه در درس خارج مبایسی به کلاس خیلی مهمه اینا همه مهم هست لکن چیزی که از همه اینها اهمیتش بیشتره و اگر اون عمل بشه نیازی به هیچ کدوم از اینها نیست تو من پیش مبارسه من توضیحات رو رازه به پیش مبارسه خب در واقع توضیحات امروز جلسی امروز اختصاص داره به روشه مستازی‌تر و جزدی‌تر پیش مباقص مثلا ببینید مثلا عزیزان تصمیم گرفتن که پیش مباقصه کنم خب، چی کار می‌کنم؟ عرض کردم یک ماه یا دو ماه جلو‌تر پیش‌بینی می‌کنن که مثلا استاد مورد نظر به فلان بحث خواهد فلان بحثی که ابتدایی موضوع مثلا فرس استاد الان درس خاصی رو بیره دو ماه دیگه، یکونی ماه دیگه میرسه به ابتدای بکس مثلا بردرسی حکم غینا بردرسی حکم نمیدونم ای که این فرع عمده فکر خب، شما این رو در نظام میبینید این دنگاه یک این موضوع کار وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما حرف که موضوع رو به تمرین بگذاریم خودت رو محق بزنی بدون تک برای مستاد و با آمادگی و تصمت اجتهادی بری بشیم زدگی باست فرصت داری. این دومان را چی کار باید بکنید؟ یعنید بخواد صحبت روز ما راجع به روششناسی استنباد فقه برای کسی است که می‌خواد تمریم بکنه و با تسلقه کامل وجود در کلاسی چرا پیش مبارسه مگرمتیم از یا یا شخص گرشد رو که ما عرض میکنیم این میتونه فردی باشه یعنی ما الان آن گفتیم مثلا در کنه در مورد روایات چه مسیر رو چرا ما گفتیم پیش مبارسه <تصفيق> چون این کار فردی اگر بش چند این بگیره سماراتش چند میشه احتمال که انسان در جهر مرکب قرار بگیره خب میگم تو چون از که هستن میخوام به انهاع خارج از مسیر عادی و مسیر بایدشون رو کنن اینا در معرض آسیب جهل مرکب هستند. ممکنه در یه توهماتی سیر کنند که خودشون احساس کنن خیلی مثلا میفهمند و خیلی سطح بالا فکر میکنن، لیکن این طور نباشه. برای اینکه که جهل انسان رواق بشه ما پیشنهاد می‌بینیم که حتما پیش ممارسه صورت یعنی روشی که اجرا میشه رو در هفت دو یا سه جلسه اینا با نه هر اگه هر روز بخوام مباعثه کنم باید کانای دیگه نداشته باشم. و این رو ما با کسفت مباعثهات و کلاس ها مطالبیم هیچ چیز نباید جای قجوعهش جستجون تحقیق دلکتر و فکر رو بیدن. حتی اگه کلاس مباعثه همه وقتهای ما رو پر کنه اجازه این کارا رو به ما نده اون باید تعدیل بشه حتما هیچ چیز تکران رو هیچ چیز برای کسی که می‌خواد خودش به برگرد استنباط برسه هیچ چیز جای جستجوی فردی تفکل فردی به درسیرهای خالات فردی رو نمیداره و اما در اشتناسی استنباط فیخ ما فرض کنید موضوع غنا رو میخواییم بروسی یا هر موضوع دیگر میخواد مو قدیم باشه یا با جدید باشه البته پیشنهاد ما برای تمرین های اولی این است که حتما موضوعی باشه که قبلاً کار شده موضوعات مستحدثه برای تمرین اولی مناسب نیست خب موضوعات نماز تحارت تحارت خیلی خوبه مردم حضرت امام که ترموانه که اگر کسی باب تحارت رو و باب بیل رو تمنیم بکنه برای اشتهاد اسم کافی است چون در بحث تحارت به اندازه کافی روايات مطرح شده کار روایی خیلی خوب اونجا می تواند بشه و موزوشی ناسی اونجا کلنه هست و یه تنویل چاخ و خیلی خوبه این میشه کرد. سلات هم همینطوره بلیسی هم همینطوره. به این هم باید پار شده؟ به این به خاطر این هزرت امام گفتن که چون روایت کم هست اونجا بیشتر با خواهد کار میشه یعنی یک تمرین خیلی خوب برای بحث عبادی و یه تمرین خیلی خوب برای بحث معامله لویش میشناسم. خب ما می‌خوایم یک موضوعی رو استنباط کنیم. استنباط یعنی چی؟ ما قرار چطور بکنیم؟ استخراج چ... چی بکنیم؟ این موضوع رو از چی از منابع دینی یعنی منابع اسلام استخراج کنیم. منابع اسلام چی هستن؟ با... کتاب و سنت. چیز دیگه یا ارزشی نداره، ارزشی مستقبل نداره یا اگر ارزشی هم داره پر به نقش فرقی نداره به همین کتاب و سن. پس ما یک کتاب داریم و یک سنت اه... خب در مورد کتاب چیکار باید بکنیم؟ ببین من یک ماه دو ماه قبل شروع کردم پجروهش شخصی خودم و مباحثه چیکار باید بکنم؟ موضوع برام تعیین شد استاد مربوطه دو ماه دیگه به این موضوع میده من چیکار باید بکنم؟ یک باید به آیات مراجعه بکنید ببینید راجع به این موضوع در قرآن کریم اشاره ای وجود دارد یا نه؟ فرض میکنه اشاره وجود دارد مثلا موضوع خیران آیاتی به جمعه را مورد قناع موجود داره خب من چیکار بکنم؟ این آیات رو چیکار کنم؟ سری مراجعه کنم به تفاصیل و شروع و نه ده نه این مسیر رو ما باید تقنیم من یک و دو عرض میکنم یعنی پیشنیاز های برداشت درست از برغان پیشنیاز ها این هست یک ادبیات خاضم مبانی درست فهم بحر. برمپران اصل <تصفح> توجه به سیاق آیات خواه توجه برید دبیعت عرب که ما میگیم این علوم رو شامل میشه علم نه علم سر تانانش بلاوت تانانش لغت خب آقا ما اینا رو که خوندیم اینا رو اصلا برای چی نمیشتشونه اینجا اینا رو که ما خوندیم دیگه اوال نلم بگی اینا رو خوندیم. واقعا به خاطر این نوشته شده که واقعا درست اضافه شده. لکن اینا به خاطر این نوشته شده که اسم این که ما در یه زمانی تحصیل کردیم این دردی رو درمان نمیکنه. ما باید الان خودمون رو محک بزنیم. ببینیم در چه سطحی از ادبیات عربی قرار داریم. بدون تاخیر. ما باید ببینیم که سطح ادبیاتمون به چه شکلی. بعد نشانه ای عرض میکنم هر کسی خودش به خودش مراجعه کنه ببینه در چش سطحیه قرار نشانش اینه که اگر در آیه شریفه یا در رواه سؤال عدبی برای انسان پیش آمد خب و انسان تونست تشخیص بده که این سؤال یه چه من هنال حضور زهر ندارم یادم رایی تقنی بارد لیکن من می‌دونم که این سؤال رو با مراجعه به چه برسیم پاسخش رو می‌تونم تقییم این نشون میده که سطح شخص سطح قابل قبولیست و جدن هم می‌کنم یعنی سؤال رو می‌تونه بندی بکنه و تشخیص بده که درباره پاسخش باید چی کار کنه باید چه؟ به چه باقی مراجعه کنه به چه اکرامن منبعی مراجعه زید کدوم واجعه باید برجاتش این نشون میده که اگر کسی در این سطح هست این نشون میده که نیازی به یعنی کار نیازی به کار مجدد نداره دارد. این آقا سطش سطه نسبتاً خوبی هست و این شخص باید چیکار کار کنه؟ این شخص در مراجعات مورد نیاز پاید به کتاب ها را و اندیارش رو بخش با اگر کسی اساسا وقتی آیه رو میخونه اصلا سؤال برش متزه نمیشه یا اگر سؤال متزه میشه ممیدونه اصلا چی هست تا مرمول که چه قسمتی از ادبیات. هست ما لغت, پیش میاد لغت, لغت لغت رو میدسیم لغت به جواب لغت من حرف لغت هست که خیلی پیش اگر کسی در این هست چه بابی رو باید مراجعه کنه این شخص باید یک دور سریع ادبیات رو کار کنید تا بستو. یا هر وقت دیگه به نظر مندمی، به نظر حقیر جیروترانی خبری نیست. ما باید اینا رو درست کنیم. مبانی کار قرآن و سنت وقتی تمام شد، درست شد. تمغی صورت کنیم اینو رو بشمیدیم اصلاح یه چیز رویایی پشت عبرها نیست. اجتحاد یعنی این توامنده ها رو در خودمون ایجاد کنیم. که وقتی به قرآن و رو روایت اتولاجی کردیم حرف خدا رو، حرف قریه رو درست بفهمیم. بنده پیشنهادم برای کسی که ضعف ادبیات شدید داره اینه هست که حتما در طول سال یا تابستون حتماً حتما برمانه داشته بشه پیشنهاد بنده این هست که اگر امکانش هست تدریس صورت بگیره یه تدریس انجام بشه که خب خیلی خوب. تعداد سال‌های تدریس می‌تونه دو تا سه سال باشه خیلی حقوره تدریس رو من پیشنان بکنم آیا در روی بعضی‌ها تدریس حرفه‌ای پیدا می‌کنم یعنی چیه ناسم یعنی ده سال سویدو ترتی می‌کنم این دیگه خب نگاه حرفه‌ای به این مغوله هست ما اون رو پیشنانات نمی‌کنم ما نگاه ابزاری رو به ادبیات بیاتو و تدریس ادبیات پیشنهاد پیشنانات یعنی یعنی اگر شرایطش بود حتما یک سال حتی اول صرف تدریس کنیم تدریس هم خوب شرایط همه دست خدا آدم نیست ممکنه شرایط تدریس نگاه هم نباشه میتونه تدریس خصوصی دو نفر تبدیل سال اول یکی بیارید و آشکار کنیم تدریس رسمی خوبی شنست که انگیزه آدم آخر سا هر سال هرس بیشه مؤسف بیاد بره. کلاست این بله تأکید سایفووسیه دفعه می‌بینیم وارد شد شد یا خود آدم شد این بی‌دید رو داره. پرها آغاز من سایفو نفر رو ارزش نکته اینجا ارز می‌کنن اینا خیلی بس ندارن اینا رو تغییر داده میشه. حالا نکته ای که اینجا هست این هست که در مورد ادبیات عرب ما خو قواند زیادی رو خوندیم که این قواند عمدتاً یعنی بخش بسیار قابل توجهش از طریق اهل سنت به دست ما رسیده کیتیو نمیدونم ابن مالک و ابن حاجب و این ها خب. آیا اونها حرف آخر رو زدن بهترین ها رو در درک معنا کردن؟ قطعاً ند نجونش هم است که شما بعد از نجیف مدتی فاصله می‌گیری به بخصهای عدبیات بخصه عدبی که ما راجع میکنیم خودتی رو تا فکر میکنیم احساس میکنیم که میشه یک راه بیتری رو میشه حرف بهتری هم زد چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که در مورد ادبیات عرب باید با فکر باز عمل کرد نه فقط یک به اون قواهیه که نمیده شده این فکر باز در شورتی فراهم میشه که زینات داره کسا میده اگر شما هستند را تبینید حتما تدریس داشته باشه بعضی همینه که باعث اتخاذ مبنا بشه برد یاد از افراد که میاد از اشتفاه بردن سا آقاییم این چه میرونی چه مبنایی که همین پرو بیدن بردن در فاید هست باید اشتفاه در را از نه در, در از مربوط به تحلیل معنی و درک معنا میشه. اونجا به اتخاظ معنی می‌شوند. یک لایه‌ای از اجتهاد ادبی لازم. نمی‌خوام به شما رو. اجتهاد ادبی یک چه بسیار دست‌گیفتنی و جذاب و شیره نیست. مثلا مثلا در مورد حزمین. اگر کسی حزمین رو متوجه نشهد. هزمین رو اتفاید نکنه احساساً کلام عرب رو کام به بایده نخواهد شد. چرا؟ چون ما یعنی صفقتیم به قرآن و به روایات که درش هزمین بکار داریم هزمین رو تو که ما شما به شکل بهش نیست بسیار پر و به لغت هم یعنی این بحث یک بحث نحویست که کاملا به لغت معروضه مثلا از کنم امنا سنورقی علیکه ایک کاشه زمانی بود که ما این رو میکردیم امنا سنورقی علیکه سنورقی علیکه چه با بیده با با بحنا. شو. سنول دیگه علایی کرد خب در جاهای دیگر با الاغ می‌تردی شد در جاهای دیگر می‌میشتر با الاغ خب اینجا اگر نما در تجمه علا رو با الاغ یکی ترجمه کنیم این دشون که یکی طرف اصلا از فضای تضمین و بحثایی ریز لغوی دوره ما باید بدانیم یورگی و همتها با علا وقتی مرتدی میشه درش تزمین وجود داده، تزمین یک مفهومی که با علا سازگاه است به خلاف معارضی که اصل درگون این هست که با علا و از این قبیل مثال ها بسیار فراوان هست، مثلا فعلا ما نجا هم الالبر، نجا با دل ها اصلا معتدی نمیشه لیکن اینجا تزمین مرموی چی شده؟ نجا هم و سوگونا هم بر آثارش هم انسان مشاهده نمی کنید ما در مدرسی غیر آمیات ببینیم که اگر این موانی رو کسی کار کرده باشه، غالب باشه افاقود داره در که داشت با کسی که این کار نکنید یعنی محسوسه و خدا نکرد ما آلات رو یک جون محنامت جو که صاحب اون آیه رازی نباشه. خب این در مورد نرف و صرفیه در مورد بلاغت چی؟ در مورد بلاغت، بلاغت هم مؤثر هست در اون فرمه آیاست. لیکن این بلاغت با فکر باز. یعنی گشتوب های بلاغی رو انسان بشناسه و بتونید تشریف بده که اونجا هم شرط آفری استعمال شده یا یک دونه از بلاغی. مستواشین رو باید انسان بدونه هیچ آر نیست تا تابعشونی برنامه مثلا مجوره مختلفل یا مختلفل داشته باشه مختلفل که ما پکیم کنون نیست مختلفل با مختلفل شما مختلفل نکوندید جوابید شما مختلفل شما مختلفل هم نکوندید خ بلاقت هم نشتره. چیزی که بیشتر من الان میخوام روش بدم بحث لغت هست که متاسفانه متاسفانه یک تلمه میتونه 20 سال سی سال روزه باشه یک ساعت هم که درسته لغت قرارش خیلی ده شبابه لغت این که <تصفيق> پایه فهم کتاب و دونت کت ای که می تا روش هست تا بهثر مهارت ها هست خب در مورد لغت ها چکار باید بکنیم که این انبوه عقباندگی ها رو جبران